سلام خانم، من یک وقت می خواهم. سلام، الان متاسفانه دکتر وقت ندارد بعد از ظهر چطور؟ دکتر بعد از ظهر وقت دارد؟ نه متاسفانه، دکتر بعد از ظهر هم وقت ندارد فردا ساعت ده صبح چطور است؟ فردا؟ اما من امروز دندان درد شدید دارم. خب، منتظر بمانید. نیم ساعت بعد نوبت آقای محمدی است. اما ایشان هنوز نیامده. منتظر میمانم. اگر آقای محمدی نیامد، دکتر شما را به جای ایشان معاینه می کند. بله. خوب است. چه شده؟ آقای دکتر. دندانم خیلی درد می کند. سمت راست ردیف بالا. بله. دندانتان را باید پر کنم دو بار در این هفته به شما نوبت می دهم سهشنبه و پنجشنبه اگر بعد از ظهر باشد بهتر است خب، سهشنبه و پنجشنبه بعد از ظهر لطفا دهانتان را باز کنید